بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل و وصحبه أجمعین اما بعد بحثی که نیاز بهش داریم بحث از کار سبقو شامگاه خدا از کار بطور معمولیازش داریم ولی خواه انشالله امروز سعی میکنیم یک يك مروری بکنیم بر هم ها و هم معانی از کار سبقو شامگاهی که سنت هست ما روزانه بهش عمل بکنیم هر روز سنت است که ما بهش عمل بکنیم هم ان معانیشو معانیش هم فضیلتشاش رو بکنیم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و وسلم قبل از اینکه وارد موضوع بحث از کار بشیم نیاز است ما یک مروری بکنیم به آیات و احادیثی که در مورد ذکر اومده ما چون الان بحث از کاره خود ذکر ذاتن یاد کردن یاداوری ذکره قلمی ذکر برای ما آشنا هست ذکر یا ورد اون چیز اورادی که جمعشم اوراده یا اون اسکاری که در شریعت اومده که ما باید تکرارش بکنیم من چندتا آیه رو میگم بعد چند تا حدیث تا بعد بریم وارد اصل مطلب و اونم ازکار میشه. اولین آیه فرمودی الله فذکرونی از کرکو و شکرونی ولا تکفرونی فذکرونی از کرکو فذکرونی من رو یاد کنید تا شما را یاد کنم مرا یاد کنید با چی؟ و طاعت و عبادت و همین اورات و تسبیح گفتن تهلیل گفتن تکبیر گفتن فذکرونی اذکركم تا اینکه شما را یاد کنم تا اینکه شما را یاد کنم شما در فضیلت همه ممیدونیم در فضیلت اون شخصی که الله دوسش داره اون بنده که محبوب الله با ذکر و یاد الله و طاعت و عبادت به اون درجه رسیده که الله را دوسش داره الله جل شأنه جبرائيل رضي الله عنه هذا بايش مبيت من فلان له دوست دارم او را دوست داشته باشم لازال عبدي, لا يزال عبدي يتقرب الى سيقدر لازال عبدي يتقرب يتقرب بالنوافل حتى احبه ونوافله من اذكار همچنان به من نزدیک میشه تا اینکه او را دوست داشته باشم لازال عبدي يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه قم ك الله دوستش میذاره جبرائيل رسل ده من فلان رو دوست دارم جبرائيل صدا میذنه ملائکه شما باید فلانی رو دوست داشته باشید چون الله رو دوست دارد سپس محبت اون فرد در در خلائق و بندگان گذاشته میشه فذکرونی از کرک مقابله متقابله شیخ الوانی رحمه الله حرف جالبی میزنه میگه ما الان یکی از رنجش های امت اسلامی که ما الان داریم عدم نصرت در مقابل کف تاغوت اهل بدعت زحفمون که در شکسیم ایلت چیه عدم نصرت الهی عدم یاد خدا عدم پای بندی به طاعت و عبادت ها این ها انتنصر الله انصر کن الله رو نصرت بدیده آدم با چی الله رو نصرت میده؟ آدم با یاد الله با طاعت با عبادت با نوافل حدیثی هست خیلی جالبه مثلا من این مسئله رو مطرح کردن در وقت انتنصر الله انصر حدیثی خیلی جالبه معناشم حدیثم صحیح در سنان ترمزی از آن لما الله عليه وسلاه ألا أنبئكم بخير أعمالكم بشميات ندم يا ذاريناكن ببهتانين أعمال شما وأزكها عند مليككم أن بهتانين أعمال نذب بعده قارته وأرفعها على درجاتكم إن في ذي شما رب لا ببره وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ببريش شما أز تلو النقر صدق دعما بهتر وش من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناق بعيد إنك با دشمن روبرو بشید اونها گردنش گردن شما رو بزنن و شما گردن اونها رو بزنید قالوا بلا یا رسول الله فزیلتش از جهاد فزیلتش از صدق دادن طلا و نقره از همه اینها بالاتر رسول میگه به تو یاد ندم فربودن آری قالوا بلا یا رسول ذكر الله قال ذکر الله حالا ذکر الله و یضرب رقابکم گردن شما هم بزنن از اونم فزیلتش بالاتر ذکر یاد الله اما چرا حالا ما درصوص بعدا قایم میکنه چرا اینقدر فضیلت ذکر بالا هست یاد الله بالا هست خب برگردی به اصل مثل فد کرونی از کرکم و در راستای این آیه ما گفتیم انت انصر الله یا کم الله را نصرت بده با چی نصرک بده؟ و همین ذکر، طاعت، عبادت تا اینکه الله تا را نصرک بده غم و اندور از دلت ببره ما از ضعف ایمان می نالیم. از ضعف سکینت و وقار و اطمینان می نالیم. از نشانه های قیامت که رسول الله صلی یاد میکنن چی هست؟ یوشکان تدا علیكم و الامه بکما تدا الاكله الى قصاتها هذيك اس امتها بسال شما حملور بشن مثل کسانی که به غذا حجوم میارن بعد گفتن چرا یا رسول الله چرا مثلا ما اینقدر ضعیفیم در مقابل اونها مقابله نمیتونیم با تلمودن بخاطر حب دنیا و کراهیت مرگ فراب از مرگ همه از مرگ میترسن مرگ مریضی میاد بیماری میاد تا کی میخواسته باشه مگه سبب درسته انسان مرات میکنه، درسته انسان ملاحظه میکنه ولی اینکه تبدیل به بی یک بیماری روانی بشه، افسردگی بشه، انسان دست از امرار و معاش و زندگی برداره، که نشد مسئله خیلی مهمه نمیخوام این وارد این مسئله بشم ولی خب من بیشتر رو اینه که انسان هر چقدر تر بشه، به الله نزدیک تر بشه، آسیب پذیریش کمتر بشه. آسیب پذیری معنوی و مادیش. آسیب پذیری معنوی و مادیش، یعنی اون آسیبی که از نهاز ماده الله بعده داده اگر الله را نصرت بده یرسد السماء علیکم مدراره در حال آسفه را به شما باز میکنه و آیات دیگر اما یتقل الله یجعل له مخرج ويرزقه حيث الله جنبين جنبين و یرزقه من حیث لا یحتسب تقوی الله را پیش آدم بگیره در روزه آبا برای انسان باز میکنه این جنبه مادیشه جنبه معنیشه از اون اطمینان سکینات وقار جنگ بد را شما در نظر بگیری الله اونها داد مشرکین ده برابر اصحاب یاران رسول الله صلی الله علیه و بود با مؤمنین به خاطر چی؟ به خاطر یاد اللهی که در دل و زبانشون بود در دل و زبانشون بود شما مثلا ما مثلا این احادیث رو می‌خونیم شما نگاه بکنی این, این, این همه فضیلت با این ما ازش رسول صلی و اون همه تعلیم مشغولیت جهاد سازماندهی نمیدونم لشکر رو، این همه مشغولیتا او با نه تا همسر ولی با این وجود رسول الله صلی الله علیه و آله اهل ذکر اهل یاد خداست نصف شب را به تهجد می در سجده هم، طولانی دعا میکنه و با این وجودش و مقامش و منزلتش میگه لا اسمی علیک الذکران كما اثنیته علی, علی،, علی، كم اثنی نفسک با الله میگه یادت و فرداگار نمیتونم یادتو حمد ستایشت را انچنان چنان که تو مکانتت است به جا بیارم مقصرم در یادت در اون مقامتی اون مقامت را اون جایگاهت را که شما چی تو حقش واسه سپاس بذارم حقش رو ادا بکنم از جمله آیاتی که در وسط فضیلت ذکر اومده یا ایها الذين اذكروا الله ذكرا كم يزيرا ما مؤمنی خودتون این اکاس اسپریت روی این آیه این ذکر کثیرا حس داری اگر نیست پس این ایمان تو یکم مشکل داره خیلی مشکل داشته باشه من نمیدونم بین ما و خداست یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذکران كثيره صفت مؤمنه باعث الله را زیاد یاد بکنه لازم نشه لازمه ایمانه با زیاد الله را یاد بکنید ذکر الله در ثوابتم با اخلاص و با متابعت از رسول پیرو اد رسول صلی الله و ذکر خدا به هنگام معصیت نزدیک معصیت نشین الله را بیاد داشته باشین ذکر یاد یاد الله را بیاد داشتن ذکر به هنگام نعمت غذا می خوریم الحمدلله ذکر شروع میکنیم میگیم بسم الله وارد مسجد میشه بسم الله و مفتح افتح علی باب رحمتک ورود آدم تشوی میشه توالت میشه اللهم نعوذ که من الخبث والخبائث همه ذکر یاده اینها باید در زندگی ما تکرار بشه و از داریم در شدت مصیبت یا بیماری یا هر مصیبتی که بهمون میاد سب داشته باشیم بادیاد یاد الله داشته باشیم که در مقابل این مصیبت ها برای ما پاداش زیادی نگه داشته و این دنیا رفتنی هست و ماندنی نیست برای که مونده رسول سلام میگه اگر مصیبت بهتون وارد شد یاد من باشید یاد مرگ فراق من دیگه بالاتر از این دیگه غمی نیست رسول خدا محبوبتنی خلق خدا و یافتن. اگر مصیبت بهتون وارد شد پدری مادری بچه ای فرزندی فوت شد بیاد من بیفته که من عزیزتر از اینها بودم و رفتم و رفتنیم ام انکم و میتون هیچ کس جزء الله پایدار نیست الا میاد را در بحث کارم باهم خون در بحث آیه الکرسی الله لا اله الا هو الحي قیم یک گذری ان شاء بر این آیه را هم داش از جمله آیات در بحث ذکر من به سه تا آیه میکنم فر الله جل شانه و الله یا سیدا و ذاکرات اعد الله لهم مغفرتا واجرا عظيما و هيك زياد زنمت زیاد الله اذكرين الله و اللہ اللہ و ذاكرات اعد الله اعداد يعني آماده کرده برای اونها هم مغفرت و هم پاداش بسیار در بهشت الله جل شأنه در روز قیامت پاداشا برای ذاکرین زیاد برای اونایی که اهل ذکرن طريقي كنوا اونوي اهل ياد الله ان اهل تسبيحا اهل تهليلا واهل تكبيرا حمد ستويش الله پاداش الله بسياره رسول الله عليه وسلم بفرميان مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كسي كه مثال كسكي. الله ميکنه ذكر الله ذكر الله و مثل مثل ذكر الله نمیکنه. الله جل شأنه مثال مشرک مشرکی مشرکین رو به مردگان در قرآن می‌زنه. چون مرده قابلیت گفتن رو از دست میده تو قبره. می‌تونه حرف بزنه؟ مرده مرد حرف می‌زنه؟ نمی‌تونه حرف بزنه. میگه مشرک هم مثل اونه. چرا؟ و حتی صفات در قرآن وقتی که میگه ما انت بنسمع من في مثال تشبیه کی رو داره میکنه خداوند میگه مشریکین مثل اونایی که تو قبرن همون تو که تو نمیتونی صداتو به مردگان بشنوی این مردگان نمیتونن ببینن و بشنون این مشریکین هم مثل اینها هستن تشبیه مشرک به مرده نه مرده به مشرک این مرده مثل مشرکه چون این مشرک اعتبار اون به اعتبار اینکه ذکر الله نمیگه یاد الله نمیکنه نمی تونه حرف یعنی بود نمیتونه حرف بزنه یعنی حرفش فایده ای نداره معنای توش نیست فرقی به اون ورده نداره یک جسدی که داره می چرخه میگرده هیچ ارزشی نداره ارزش معنوی نداره حیات نداره مثل مرده هست که داره زندگی میکنه آخرین حدیثی که من در بحث فضیلت ذکر میگم فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله ما جلسه فرمایان جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله في مجلسی مجلس بندگان الله یاد الله نمی کنند اولا می علی نبی صلی الله علیه و و یادی از رسول الله صلی الله نمی کنند الا علیهم تا مجلس نبی شینه اشخاص یاد از الله و رسولش نمی مگر اینکه براشون حسرت و ندامت بشه پشیمانی بشه روز قیامت افسوس می چرا در اون مجلس یاد علیकुम سلام یاد الله را نکردند فان شاء عذبهم وان شاء غفر یعنی کسی که در مجلسی بشینه ذکر یاد الله و رسولش نمیکنه مستحق عقوبته الله شاید عذابش بده شاید عذابش نده انشاء عذبه و انشاء غفره لهم شاید الله نرب ببخشه شاید نبخشه چرا شا مستحق این عقوبت شدن که الله رو نبخشه؟ چون یادی از الله و یادی از رسول الله صلی الله علیه وسلم در اون مجلسشون در اون جلسهشون نداشته طبنين به خود بحث اسکار اسکار با اوراد صبحگاه و شامگاه اولش صبحگاه ذکر الله با زبان و با حضور قلب نه که مثلا تسبیح یا انگش را بشماریم سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان سبحان سبحان این تسبیح نیست تسبیح تنزیه الله پاک پاکمون از زهد و, و نسل الله بیاد آوردن الله در قلب قبل از زبان قلب الا ان في الجسد المضى اذا صلحت قلب درست بشه جسد انسان اعضای بدن درست میشه زبانت وقتی که تسبیح خدا را حاضر نیست درست بگه بدون که اون قلبت مشکل داره که درست تسبیح الله اسم الله اسم جلاله از زبانت بیرون نمیاد از تسبیح را باید درست گفت درست باید از قلب تسبیح گفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نه اینکه که فقط زبانی باشه این تسبیح ما باید محافظت داشته باشیم بر گفتن و اقرار قلبی بر اون ذکر حضور مهمه و تعظیم قلب مهمه وقتی که مثلا ما ذکر یادی از خدا میکنیم میگیم سبحان الله به حمده یا سبحان الله العظیم به حمده عظمت الله را بیاد داشته اینکه یعنی یاد الله فقط مجرد, مجرد یک وردی باشه که معنای در خودش نداشته باشه نه باید تأثیر ایمانی و معنوی در قلب ما ما را باید به خدا نزدیک بکنه اونجا هست که الله میگه که در حدیث قدسی اگر یک وجب بنده به من نزدیک شد من یک گذبش نزدیک میشه این نزدیک شدن با تعظیمه نه با مجرده تکاندادن زبان نه با مجرده یاد آوردن در قلب نه این قلب باید اون ذکر را شکوفا کنه باید به معنای اون توجه بکنه اینجا هست که اون ذکر اثر خودش رو تا حد گذشته قرونی از قرقم شامل حال ما میشه و از چیزهایی که مثلا ما درباره ذک مثلا چنانچه صحابه رسول نغمی کنند. امینو عائشه و غیر. از اوصاف رسول الله صلی علیه الله علیه وسلم که الله به هم توصیه کرده که ازش الگوگیری بکنیم. لقد کان لکن فی رسول اصواتون حتیم برایش ما درسو اصوه ی هست. الگوی هست. از چیزایی که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم داشتن این بود که کان یفکر الله فی كل احیانه. در هر حال رسول الله ذکر ی میگه رسول می گفتم ربا ما من مجلسی نمیشینم با یارانم مگر اینکه صد بار میگم رب اغفر و تو علي نکته و صد بار و کثرت رب اغفر و تو علي نکته و این ذکر یاده این حال رسول صبح صلی الله غیر از این اذکاری که وارد شده و فهم کند ذکر از سمرات ذکر حالا من چون میخوام وارد اسکار بشم حسن اذکار صبح و شامگاه دو حالا صبحگاهو شروع میکنیم واسه در ذهن یعنی صبح و هست یک از مسائلی که یعنی جلوه میدید این ذکر این سبب میشه که رسول هست اصلا این از ذک یاد بکنه و خدا بر این چینین از ذک یاد بکنه این ذک سبب بیداری قد در مقابل توکید میشه در مقابل خدا میشه یعنی یک بیداری، یک خوشیاری یک رغبت به سوی خدا و به سوی پاداشش در قلب تو ایجاد میکنه. این چیز را کافر نداره، این چیز را منافق نداره رغبت داشتن به رفتن پیش خدا. حتی مرگ جهاد رسول الله میگه برای شهید کاف کفایت میکنه برق شمشیر کفا به باره فتنه از عذاب قد فتنه قد در امانه شو چرا چون دارن به پیشواز مرگ میرن شمشیره برق شمشیره میدونن که احتمال شهید شدنشون زیاده ولی با این جو سینه سفر میکردن برای شهادت خب چی چی سبب میشود که اینا این چی پیشوازی داشته باشن به سوی شهادت بیداری قلبشون با ذکر یاد الله مشتاق دیدار الله بودن مثل رسول الله صلی الله علیه و سر رسول خدا کو های عایشه بالای عایشه و میگفتن که اللهم رفیق الاعلى و فقط خدات پروردگارا بر حب الله را داره حب رؤیت الله را داره و بس بی این دنیا نیست این ذکر یاد الله قلبت رو بیدار میکنه وابستگی و تعلق به این دنیا رو در قلب تسفیف میکنه چی چی سبب میشه که ما به یک انسان خشگین عصبی جسور متکبر مزدور بشیم چی چی سبب میشه عدم ذکر یاد الله عدم ترس از الله من خلاصه شده من میگم چون اون چیزی که برای من مهمه بحثه گفتم فقط بحث تذیلت لفظی ذکر نیست ما میخوایم این ذکر در قلب ما تأثیر در معنای در معنویات متأثیر بذاره همونطور که در اصحاب یاران رسول الله صلی الله علیه و تاثیر گذاشت خیلی جایی تاسف دیگه انسان انسان مؤمن صفات کسانی داشته باشه که رسول الله صلی الله علیه میگه قسا قسا سیل مثل اون خار و خاشاکیان که بعد از سیلاب روی آب میمونن انسان هایی که بسشون میکنه دیگه اما حدیث یوشک علی ان شد علیكم الامم که دنیا و کراهیت مادیشون هست به خاطرش میخواد بخاطر که ایمانشون سطحیه نمیخوام که ایمان ما باشه نمیخوام ایمانمون مثل مش... مثل منافقی این باشه مثل فساد اهل فجور اهل معصیت باشه خوام این ایمان در درون ما لمسش بکنیم در قلب ما لمسش بکنیم ما تاثیر این ایمان رو میخوام ببینیم چون دیدیم و شدیدیم و خوندیم از یاران رسول صلی الله علیه و آله این ایمان در زندگیشون تاثیر گذاشته برای دنیا همیت نمیدادند. الان یک مصیبتی پیش میاد شخصی مثلا تو ماشین رانندگی داره می‌کنه کسی میاد تصادف می‌کنه مثلا دگه اون حب دنیا چطور میکنه با خاطر یک مثلا خطی که رو ماشین افتاده رو ماشینش افتاده داد و بیداد و قیامت برپا میکنه چرا خط افتاده چرا خط انداخته خشمه خشم این خشم میزنه کلیهش رو ضعیف میکنه نمیدونم کبدش رو نمیدونم پرچر میکنه و اسید معده نمیدونم سبب میشه که شونه هاش بگیره و نمیدونم رفلکس پیدا بکنه و خشم نتیجهشی چی است سرچشمش استی است کجا اومد از حب دنیا حب دنیا از کجا اومد عدم ذکر و یاد الله، عدم مبستگی به الله و قیامت و عدم ایمان به های الهی، عدم عمل با اون اینا هست در قلب ما این میساته. ما خواهیم از اسارت و بردگی این دنیا رها بیابیم با ذکر یاد الله. بخوام مبسته به آخره مبسته به خدا بشیم، نه مبسته به دنیا. خیلی ما متعلق به دنیاییم. فقط دنبال جمع آدنیه، چه کولری داشته باشیم، چه موبایلی داشته باشیم، چه زندگی داشته باشیم، چه لباسی بپوشیم، هم بمونیم اینه. ذکر یادمون اینه بجای اینکه ذکر یادمون اینکه ما امروز اورادمون رو خوندیم ورد اورا... سبگاه گفتیم ورد شامباه رو گفتیم باور بکنید اینقدر که به فکر لباس و تن و شستن لباس و نبیدن بین و رفتن و پاکیزگی خودمون ازیم به فکر ورد و اوراد خودمون نیست. اینجا را کار صبحگاه را من شروع کردم با فرموده الله فسبحان الله شین تمسون و شین تصبیحون فسبحان الله اینجا ترجمه شمیدشم، پس الله را تسبیح بگویید به هنگام شامگاه و هنگام صبحگاه چرا؟ اینجا من بعد از این آیه آیه بعدی رو اووردم از سوره قبض و سب به حمد رب بکر قبل طلوع شمس و قبل وروب. اینجا اومده تمسون مساه هست و تصبحون صبح هست، صدقاه. تو بحث صبحگاه و شامگاه اختلافات زیاد شده؟ جمهور علما بر اینم که این سین تمسون سبح سبحان الله حین تمسون این مسا از ع شروع میشه یا از ظهر شروع میشه. جمهور علما بر اینن یعنی الان وقتش شامگاهه وقتی شامگاهه حین تمسون چون آیه بعد میگه وسبح وسب به حمد جواب ب قبل قبل طورشانمس و قبل غروروه الان قبل غروبه در بخش صبحگاه محل اتفاقه که بعد از زمان صبح و قبل از غروب اگر انسان نتونست از کارش شروع بگه بعدا میگه مشکلی نیست تا ظهر وقت داه. ولی اعتبر اینه که وقتش بعد از نماز بوده ولی در بحث اذکار شام دو اختلافی که این آیه اون مبهمی که در آیه قبلی هست تمسون مسا رو برام مشخص میکنه میگه سبح به حمد دستور الله به رسول الله تسبیح الله بگو به حمد رب قبلت له و قبل الغروب قبل الغروب که بعد از نماز که ما حدیث بعدی هم که داریم اینو تایید میکنه بر رسول صل الله صلی الله علیه و سلام لان الله تعالی از اینکه بشینم با یک قومی که ذکر الله میگن من صلاه الغدا حتت تطلع الشمس احب الی من اعتق اربعه من ولد اسماعیل من بلد موصوب شده با قومی که ذکر الله میگن برای خودم بهتر میپندارم از اینکه بیام یعنی این شأنش منقط مق منزلتش بالاتر از اینکه من چهار نفر از فرزندان اسماعیل علیه السلام یعنی گرونترین بردگان و شرافتمندترین انسانها بر روی زمین که فرزندان اسماعیل از فرزندان ابراهیمند آزاد بکنم من این اینقدر اجرش بالاست و نه انقعد مع قوما يذكرون الله من صلوات العصر اینکه با, با قوم بشینم بعد از نماز است الا ان تغرب الشمس تا اینکه خورشید غروب بکنه احب الي من اعتق ارضا من اعتق من ان اعتق اربعه اینکه بشینم برای من بهتر بیشتر دوست دارم از اینکه بشینم بعد از عصر از اینکه این 4 نفر رو آزاد کنم 4 تا از 4 تا از بردگان فرزندان اسماعیل بس این اهمیت و مزیت نشاستن بعد از آس و مشغول شدن به ذکر یاد الله و همچنین بعد از نماز خب بریم به ذکر اولین ذکری که اینجا یاد شده و اونم تلاوت سوره های اخلاص و فلق و ناس که والله احد قل اعوذ برق و اعوذ رب الناس حدیث رو خونیم حدیثی که در شانی این سه تا سوره اومده ابن عبدالله ابن خبیبه رضی الله عنه قال خرجنا فی ليله مطیره و ظلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل لنا شبه شبهن قام بارم يومات تاريخ عن بود رفتين بدون بار رسولة نماز لكنا بر ايمان قال فأدركه فقال قل من جرسل برسوله رسول الله قف بقوف فلم أقول شيئا شيئا مجينا قفتا ثم قال قل من جرسل بمان فرموت دوبارة بقوف ديقل من جرسل بقوفتا فقلت ما أقول رسول الله قفت شبك يا رسول الله قال قل قل, قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح به هنگام صدا و شامگاه قل هوالله احد و دوتا تا معوذته یعنی قل اعوذ و اعوذ به ناس را سه بار بگو تکفیت من كل تو ترا از همه چیز کفایت میکنه نه این کلمه که ترا کفایت میکنه ما چند جا داریم که در شرع اومده ترا کفایت میکنه نسبت اون چیزی که نیاز داری و ترا کفایت میکنه از اون چیزی که به تو ضرر می‌رسونه که صرا از اون در امان می داره یعنی هم حفاظت هم کسب، هم یه چیزی به دست بیاریم از اون چیزی که نیازش داریم و هم از اون چیزی که به ضررتون هست اون رو از تو دفع می‌کنه این کفایته اون چیزی که نیاز داری به دست بیاری و اون چیزی که ضرره به تو از تو دفع میشه این کفایته این سه تا سوره سه بار تکرار بکنی این پاداش را به دست بیاری این مقام رو به دست بیاری این جایگاه رو به دست بیاری یک اینجا اومده در وقت کفایت من فقط از باب یادآوری میگم چون این فضیلت اهمیت این ذکر را میرسونه یعنی این سوره ها را میرسونه از جمله جاهایی که اومده بحث نماز ضحا هست رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند کسی چهار رکعت نماز ضحا را بخونه او را کفایت میکنه او را در روز کفایت میکنه گفتم کفایت هستی؟ این که شر به ادنه و اینکه درهای خیر برات باز بشه خب از شخصی میگه ما این کارو انجام میدیم ولی نمیشه ولی ما میبینیم مثلا فساد و فپیش میاد ولی ما میبینیم که خیلی چیزا پیش میاد من دو تا مطلب میگم میگم در این مورد مطلب اول اینه که شر به نسبت افراد مختلفه اول باید ما اعتقاد داشته باشیم از الله هیچ فعل شرری صادر نمیشه کار الله همش خیر است همونطقه اصاست در و وجه چبهنگان میگفتن و شب رو لیشه شب رسوی الله نیست این باید بهش اعتقاد داشته باشی کار الله همش خیره هر چیزی که در زندگی پیش میاد از مرگ و میر و بیماری و مصیبت اون به خیریتت بوده این حسنظل به با الله باید مؤمن داشته باشه هر چیزی که پیش میاد به خیریت انسانه هر پیش آمدی در زندگی انسان میاد اون ما مصلحات ما بوده ولی ما نمی‌دونی ما نمی‌دونی این مطلب اول مطلب دوم اینه که قرار بر این نیست زندگی بر وفق مراد میل ما باشه به کام ما خوش باشه یعنی همیشه ما دنبال این باشیم که خوش باشیم هیچ ضرر هیچ مصیبتی به ما نرسه اینطوری نیست زندگی که مثلا به چون میگم یک مصیبت مثل قرار اگر قرار بر, بر اینطوری باشه کسی نمیره باز همه زنده باشن دیگه چون الان مثلا فر شخص میگه که پس اینجا گفته تو را کفایت میکنم پس یه خلاص من نباید میبرم. نه اینطوری نیست خداوند یک سری مسالش گذاشته یک سی چیزا گذاشته که باید باشه و بین فرد تا فرد دیگر فرق میکنه شاید به تو باشه نفر دیگری باشه کشتم بده برای این آموزش که موسی آموزش ببینه علیه السلام پیامبر خدا الله رو میفرست پیش خازم خازم میاد بچه رو میکشه کشتن شره مردن شره ولی این شره خیر بود برای کی برای پدر و مادرش چون اگر این پسر بزرگ میشد همونطور که یاد داد موسا اگر بزرگ میشد پدر و مادر رو می کرد کافر میکرد سبب شر میشد ظاهرش این شره ولی باطنش خیره پس نباید ما اون شر را مطلقا شر ببینیم حتما یه خیریتی توشه من خواستم این مساله اصلا قلم نیفته اینجا رو بگم مثلا خیلی ها میگن که مثلا خارج از بحثیم مسائل ایمانی و قضا و قدر مثلا ما بعضی ها اینقدر نسبت به الله جل شعنه بدبینن میگن مثلا همیشه میگن زیاد میشنین. ما دعا کردیم مثلا جا نشد ما خواستیم نشد یعنی میخواد میگم دنیا فقط به کام خودش خوش باشه همه خوشی همان خودش باشه گفتم در بحث حسزند به الله حدیثی گفتم گفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرمایند من سه چیز را از الله خواستم که دو چیز را بهم داد در دا این دعای من را واسجابت کرد سومی را سجابت نکرد گفتم که با خوش‌صالی و قهتۀ امت را از بین نبره و با دشمنی نیاد که نسلشون را نابود کنه الله اجابت کرد سومی گفتم از خدا خواستم که میان اونها درگیری و جنگ پیش که همدیگر رو بکوشن سومی رو خدا من نکرد دعای رسول الله صلی الله علیه و با این مقامش با این مکانتش. چه سجود جواز حد حتمایی خیری تو شد. چک داری؟ یقین داریم که خیری تو وجود فرقه های مختلف. نکن شما به نظر بگیریم. اگر خوارج نبودن. اگر فصاق اهل فجور نبودن. کی میرفت دعوت میداد؟ کی میمد به نماز؟ کی اصلا خرس جوش اسلام و دینداری؟ کی میرفت چهار تا حدیث بخونه باید باشه. و با بدونی من گاهی برای که یکم قلبها آرامش بگیره من مثال برای گفتم ایجاد آرامش و تمنینه برای بعضیا یعنی که مادیگرا هستن من میگم اگر اگر مثلا فساق خلیج اسراف نمی کردن فساق خلیج اونها اهل اهل ایمان که اهل تبذیر و اهل اسراف نیست اونها که اهل اسراف و تبذیرن ان اگر اسراف نمی کردن الان من میگم تو همین شر اسراف نه که من تشویق اسراف کنم نه من میگم بعضی از شرها خیرم توش هست چقدر نونخور هستن تو یک کشور کوچیک مثل, مثل به خاطر اسراف اهل اون منطقه مثلا میرن مغازه صد تا چیز میخرن خب همین تجاری که اونجا هستن چطور تا رسیدن با اسراف اینا اونا چیکار می‌کردن تجاری کمر آبن از اهل های منطقه میان مسجد می‌سازن درسته میان مسجد میان مدرسه و هزار کار خیر میکنن اصل آمد؟ اسراف و تبذیری که بعضی از اون عربا داره یا بعضی از از خودهای خودمون هم داشته باشه من فقط گفتم از مثال فقط اینکه از خیرا هست ما نمیدونیم نشأتش از کجاست و چطوره الله حکیمه هر چیزی رو در جای خاص خودش قرار داده و هیچ کار خدا حکمت نیست این فقط گفتم از باب حکمت دارم میگم حکمتای پنهانه که ما نمیدونیم لازم نیست در مقابل هر چیزی ما حکمتش رو بدیم چون علم ما قاصره ما در بحث تذیل آیات قرطی که ما یه چیزی که می‌گویند در تفسیر آیات قرطی ولا یحیتون بشیئ من علمه علم علم خدا ما نمی‌تونه علم بگه خدای مقصودات الکلی نمی‌تونیم الا به ماشاء یک ذره توچیشات ما بدونیم و این یک ای قوت قلبی هست که به انسان میده یعنی این احادیث و این آیاتی که در این باب اومده پس این سه تا سوره, سوره سوره اخلاص و سوره معوذت انسان را کفایت می‌کنه از جمله کفایتایی که اومده گفتین در فضیلت معوذت و سوره اخلاص اینی که انسان را کفایت می‌کنه و این کفایت الله یک قسمت خواندنش سبگاه شامده یه قسمتش هم خواب قبل از خوابم سنت کسان رو که درست خودش بخونه بدنه و بدنش بکشه خیلی ستا سوره عظیبه شعلش یعنی این تا سوره سوره های رقیهی هستن که عملی رسولات رو خودشون انجام دادن رقیه شده سوره رو از حاویاران خوندن رسولات تعیید کرد سوره فاتخه سوره هایی که برای رقیه اومده چهار تا سوره هست یکی فاتحه و چطور شد که تقرخل والله حس ما برق و عذاب الناس دیگه نداریم دیگه بقیه اشتهاذات فلانی گفته من این آیه رو خوندم خوب شده مریزم اون گفته تو آیه فلانی اون چیزی که در شریعت در قرآن و سنت اومده در باب رقیات که من حفظ دارم شاید کسی دنیا از من باشه احادیث مطلع شده باشه بیشتر از من یعنی اون چیزی که من یاد دارم این چهار تا سوره است سوره فاتحه اخلاص فلق و ناس در شریعت اون سوره رسول خدا میفرمایان کسی میگه فرمان, کسی نیست که تلسم بشه جادو بشه این ستا سوره را بخونه مگر این که اون تلسم خورد بشه, بشه دیگه لازم نیست که تو بگه دیگه این تلسم کجاست کجا غایم شده کی غایم کرده و کی انجام داده کدوم جادوگر و کدوم جنی مسخرت شده هیچ کدوم از اینا لازم نیست کفایت میشی اگر به این تا سوره درست عمل بکنی با دقت بخونی با معنا بخونی بفهمی درست د قل أعوذ برب الناس ملك الناس يرسل يقول أعوذ برب الفلاح إن أعوذوا فلاح بودان وبدوا لي معنى الشيئ من كمجرد كم تلاوات وروف قل أعوذ برب الناس لا أعوذ برب الناس إن بدار دمي خورك إن دعا فبارد دعار وابتو فلاح ميبران بعد إن دعا از قلب وشه همم تقرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمو إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله الله دعا از قلب غافل مشغول ومشغول ققول لم ميجي. الله قلب این داش مورد قبول درگاه الهی نیست. بس مهم با دقت خوندن، مهم با تلاوت خوندن، مهم با معنا خوندن. این اثر معنویش داره. نه که اثر, اثر،, اثر اندازی همینطوری دست بیارید، رو خدا بخونید، لا حول الله و لا قوه الا ذکر و دعاست، دعا هم باید از قلب باشه تا اثر خودش رو بذاره. تا اگر حسادتی، اگر چشم زخم، اگر سحر، طلسمی جادویی چیزی از بادل باطل بشه. جبريل و مدثر رسول الله صلی الله علیه و دعا کرد که چشم زخم و حسادت و هر نفسی که آسیب بهش می‌رسونه الله را شفا بده ازش بسم الله ارقیک من كل شئ یوذیک من شر كل نفس او عين حاسد شر كل نفس هر نفسی از اون جادوگر و جنیانش او عین عين و چشم محسود بسم الله ارقیک تره تر رقیمی جبريل رسول رسول نب نب و مدثر رسول الله صلی الله علیه و آله رو رقیه کرد این رقیه است جادوگر نه عراف و کاهن و و난ي از یک ملکه ما دمبواد بگه ف난 شیخ روخیه میکنه اعتقاد به شیخ نه شیخ کاش رد نمیشه من گفتم وا کنین دعای قصاصستم رد شد چون مصلحت نبود دعای هر کسی را الله اجابت میکنه فرق بین نبی و غیر نبی نیست و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب الدعوه الداع یعنی هر دعایی هر کسی دعا بکنه مشرکین الله دعاشونو قبول میکنه نمیگن حتی مشرک دعاشا الله قبول میکنه و دعوني استجب لكم اسمم ده خoitte سجاوات میکنه. مخاطره حجر رسالت صلی الله و آله ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. دعا بخورید و شما به اجابتش یقین داشته باشی فنان نمیگه من ترس شدم من چند سال در جنین عالم فنان بجا نه تو جنی هستی نه چیزی تو یک انسان روانی به تمام معنا هستی. وقتی قران تو رو درمان نمیکنه مشکل از خودته. تو مشکل داری. تو مشکل روحی روانی داری. و در ذکر خدا این سه تا سوره غیر ممکنه که تلف در مقابلش استقامت بکنه باطل میکنه و شکی در کلام رسول خدا سلام نداریم این یقین داریم ادعوا الله وانتم موخنون ردخور نخواحت داشت اما اینکه بیای بازی در بیاری شیر نه من اینجا درد میکنه نه شب ببینم تو خوابم میاد جلو هم میاد بیا رسول خدا میگه جن جلویش نمیاد دیگه قاش نگیر جلو رسول الله ظاهر شد و فرمودن اگر دعای سلیمان علیه السلام نبود تو را می‌برسن به جن میگه گرفته تو را می‌بستن اینجا وسطون که بچه ها بیان ازیتت کنن که دیگه اینجا نیا جن سر صفای نماز راست میگه می‌بینم همشون یک بوزی بلا به صفا میره وقتی که صفا فاصله میفته میگه صفا رو برام بکشید میومد الانم میاد قرار بعدی نیست که ما داروی بهمون به بدن یا علاجی بهمون به بدن که ما به فرض به الان به این دارو و دادن قرار بر این نیست که نتیجه و سمارش رو همون آن ببینیم. تو تکرار اصرار میخواد. رسول الله صلّى الله عليه و شده بودن افتادی بودن عمر بن عایش میگه نمیتونند نمیتونند دستشو تکم بدهند. دست رسول الله صلّى الله عليه و سلم میگه. و روی کف دست رسول الله صلّى الله عليه و سلم را میگرفتم و به دلش میکشیدم. با این حد رسول الله صلّى الله ولی با تکرار و اصرار و عودیت و بندگی و ازلال و درگاه الهی، الله با این ابتلاع و این مسیبت از تو میخواد که حق بندگی و عبودیت را به جا این مثلا خیلی مهمه در بحث عبادت ها این ازکار سبب یعنی غیر از اون قضیه که من گفتم که سبب شکوفایی توشید در قلب میشه ازکار سبب بندگی تو میشه به در درگاه الهی بندگی حقیقی میشی بندگی حقیقی بندگی یعنی چی؟ عبد یعنی چی؟ عبادتات تیومد، میگن میان در لغت عربی اصل عبادت از طریق معبد مد که چه تبرید در تاثیرش یاد می‌کنه، طریق معبد اون راهیه که از بس پاروش گذاشته شده، تموار شده، کوبیده شده، از ذلت، نهایت اینکه ذلیل شده. بهش میگن طریق معبد. تو هم باید به درگاه لای، چرین باشی، سر پایین بیاری، ذلیل باشی به درگاه لای. این عبودیته. این ذكره تردل از اسم الله و بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء يعني انت وقت انذكرته تال الاسكر الصبحخه دايرين وصبح دا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء هي شيء ياد الله بش اسم الله بايد الله كل شر نابود بشه يعني يقين مشان مخاصه قوه قلبك مخاصه هنيتوري مخاصه ياد انذكرها دومات يعني خو انا اني قلهه باشا دا ارا دگت ان عظمه الله با داخل قلب ما شكوفا بشه عظمت و این ذکر و یاداوری و محافظت بر این ازکار این کمک را بهمون میکنه که این ایمان تشدید بشه این قد پخته بشه، ساخته بشه، تشدید ایمان بشیم همونطور که حلقات ذکر یک از فوایدش همینه که ما را از غفلت نجات میده ما را به الله نزدیکتر میکنه یک مدتی میره از الله غافل میشیم، این ذکرها و این ازکار، اوراد میشه عادت از دایره عبادت خارج میشه الان ما دوباره میخوایم به اون دایره عبادت برش بگردونیم دایره بندگی برش بگردونیم اینو دارم میگم این نباید به اینجا خط بشه این اذکار نباید این یک جلسه و در جلسه خط بشه باید هی تکرار بشه من به خاطر همین در این جزوه ی اذکار احادیث رو آوردم با فضیلت ها و معانیش که دقت بکنیم خوشحال باشی چرا این قد فضیلت برای اینطور سوره گذاشته با دقت بکنید چرا چرا این قسم دارید متوجه و رأستو قبول چرا هستش مگه مشغل حسد اذا حسد اسمون ام جادو امر شر نفاتاتی عقاد جادو گاز الله شر رو رو برای الشر. ماروط و گذاشته فرشر موکل یاد بره چانی شر فاروت و ماروت دو تا فرشته دو تا از ملائکه به قرار بر این نیست که ما بریم به طرفشون ما تناه بریم الله هست. شر سحر و جادو و این سنتی هست که باز زنده بشه اینکه ما خودمون رو در امام بدونیم من که چه من که محافظ اذكارم هستم یا بگید بعضا غرور دارم به ذکرشون به وردشون من کارم روز گفتم اون گفتی چطور گفتی تاثیر این ذکر در زندگی خودمون نمیبینی استاد نمونه مسائلی که باید اینجا گفته بشه مثلا اینجا گفتیم تفکیک من كل شيء اثر جدید هر پر اسو حق این زکاتو کفایت میکنه شرین رتی را رتی حتما این اثرات را با دقت و معنا و درست و مرتب نخونی مشکل از خودته مشکل از ذکر نیست اون ثباب و پاداش اون فضیلت و اون معنا در صورتی به دست میاری که حق مقام اون ذکر را عدا بکنی اون طوری الله از من خواسته اگر اون یاد بشه اون جا هست که این فضیلت به طور کامل و تمام عاید میشه ما به دستش میاریم ولی در غیر این صورت هر چقدر ناقصتر گفتی اون کفایت ناقصتر میشه سرسریتر سریتر گفتی که پایچه سر میشه برای حظت بگیریم صعالم